سهر باباد میگفتم حدیث آرزومندی فتاب آمد که واثق شو ولتاف خداوندی دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز و یه حد تقریر از شرح آرز اومندی علا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی علا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی جهان پیر رعنا را تره در جب لت نیست زمه راو چه می برسی در روح چه می بندی همایی چون تو آلی قدر حرس استخان تا کی دریغان ساوی همت که بر لفت کندی در این بازار اگر سودیست با درویش خورسنده خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیه چشمان کشمیری و ترگان سمرقندی